بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته باب من هجر أخاه سنة حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد المدني أن عمران بن أبي أنس حدثه عن أبي خراش السلمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسف كدمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد سدو شسو الششومين باب أزباب صحيادا مفراد باب من هجر أخاه سنة حكم كسيك يكسل از برادرش رو گردان میشه تهر میکنه حکمشیه سی سد و همین حدیث از ابو خراش سلمی رضی الله عنکی میگید شنیدم رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند من هجر آخا سنا کسی که برادرش رو یک سال هجر بکنه فهو بسفک دمه مثل اینکه خونش رو ریخته مرتکب قد شده گناه بزرگی یا نه؟ خیلی بزرگه از صحابه رسول الله صلی اللہ علی حج کردن طول عمرشون ولی حجشون لله بوده حجشون لله بوده یعنی برای الله موسی الله بن عمر رضی الله عنهما رزیک از فرزندانش بحث رفتن زناب مسجد میشه حدیث را عبدالله بن عمر نق میکنه به فرزندش میگه رسول الله صلی الله علیه و سلام میفرمایند لا تمنعوا اما الله مساجد الله دخترانه این کنیزان را نکنید از اینکه برن به مسجد گفت که والله لانم منع عنهون قسم اقول لكم منع اشو نرا حد میشه میگم میگم رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند بعد میگی من اشو میکنم میگه تا عمر داشت عبدالله بن با اون فرزندش دیگه صحبت نکرد حجرش کرد میگم به رسول الله صلی الله فرموده میگه نمیذارم میگه بذارید تو بگی نمیذارم زناب بزنید مسجد برن رسول الله میگه اگه خواستم برن تو میگه نمیذارم این حجره به خاطر چه دین رد کردن حدیث از حدیث رسول الله صلی الله و سلم. این حجر الله به خاطر اینکه اون معصیت، اون جور، اون جنایت قبح و زشتیش باقی بمونه چون جایی عرضش و قبح یک گناه، زشتی یک گناه کاسته میشه با شهرتش با سر زبون و مثل قبلا بحث اشعاع فاحشه شد بحث نگاه کردن به فیلم های مبتزل شد اینا بزرگی اون گناه قبح و زشتی اون گناه در قلب تو کاسته میشه اینو باید ما ازش برحذر باشیم چرا مجاهره به گناه من شده در شر و خیلی سخت رسول الله صلی برخورد میکنه به خاطر اینکه وقتی که یک کسی یک گناهی را آشکار میکنه علنی میکنه دیگه بقیه یاد میگیرن قبح حزشتی اون گناه از بین میره اینجا به خاطر این که قبح این گناه باقی بمونه به خاطر که درس ابرد باشه برای دیگران که اگر حدیثی اومد نگن که به درد نمیخوره یا ما برخلاف اون عمل میکنیم حجرش میکنه ازش روی گردان میشه و سختم میگه باش با توندی برخورد میکنه ما در این مسئله داشتیم داریم اینجا این حدیث در بحث رفتن زنا به مسجد یا در اون شخصی که سنگ پر میکرد یا روزی عبدالله بن عمر شخصی رو میبینه که با نوا اذان میده با نوا یعنی با آوازخونی با مد و نمیدونم مدای طولانی با تغنی آوازخونی بعد روبش میکنه عبدالله بن عمر میگه انی ابغضك فالله للله بغظ دارم بغظت دارم این چه چیزی در زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم این کارا دیگه بازی با دینه. اگه صحابه امروز زنده بودن ما را می‌دیدن چی می‌گفتن الله اکبر و فی ریوایه ذات ریوایه یعنی عمران بن ابی انس ان رجلا من اسلم من اصحاب النبی صلی عن النبی صلی الله علیه و سلم قال فذكر نحوه یعنی این حدیث از بخاری هست عمران بن ابی انس هم هست که فرد از اصحاب گفته و فی المجلس محمد وعبد الله بن کدر و عبدالله بن ابی عتاب قال سمعنا هذا عن یعنی حدیث برای خودش متابعی داره شواهیدی داره و اگر ضعفی در اسنادش هست تقویت میشه با طرق و روایت‌های دیگری از همین روایت قال المؤلف رحمه الله باب المحتجرين حدثنا اسماعیل و قال حدثني مالک عن ابن شهاب عن عطاء بن یزید الليثی عن ابی ایوب الانصاری رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام 167 باب از ابواب صحيح عد المفرد امام بخاري رحمه الله وغفر الله فسيح جناته باب المحتاجين دون فريق حج میکنان هم با هم قطع رابطه میکنن رویگردان میشن از هم دیگه 314 همین حدیث حدیث ابو و انصاری قبلا داشتیم که میگوید رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند لا یحلو لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثه ایام حلال نیست برای یک شخصی که برادرش را هجر بکنه ازش رویگردان بشه بیشتر از 3 روز یلتقيان فیعرض هذا و يعرض هذا ملاقات میکنن با هم دیگه ولی از هم دیگه رویگردان میشن و خیر همما الذي بد و به سلام بهترین اونها کسی است که سلام را آغاز میکنه در سنا نیده بود داریم با لفظ دیگر لایکنله مسلمان یحجررا مسلمان فوق ثلاثه فذ للقه سلد عليه ثلاث مرار اگر او را سه بار تکرار بکنه سلام کردن کل و ذلك لای رد عليهف قدبع بهمه سلام را تکرار قد سه بار و هیچ کدوم جوابش اگر نداد گناه را اون شخصی که حاضر نیست صلح بکنه، گناه رو اون متحمل میشه این اون وظیفه رو انجام داده و گناه ازش ساقط میشه بس انسان با سعی و تلاش میکنه که اون ها از بین بره بغض و کینه از بین بره و صلح و آشتی برقرار بشه بین ماها قال المؤلف رحمه الله باب الشحناء حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبده قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلامه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا 168 باب ازباب صحيح ادم فردا بن بخاري رحمه الله وغفر له باب الشحناء شحناء كينات كدرات بغض حساده که میان ماها شیطان به وجود میاره با اون نزغاتش 315 امین حدیث حدیث ابوهریره رضی الله عنه و غفر له و لامه که میگاد رسول الله صلی الله علیه و سلام فرمودند لا تبغضوا قبلا داشت لا تبغضوا مجرده پرهیز اینکه بغض هم دیگر رو داشته باشید نیست بلکه اسباب اون بغض و کینه و هم ازش پرهیز کنید ولا تحسدوا هم همین طور به هم دیگر حسادت نورزید وكونوا عباد الله اخوانا برادر هم دیگه باشید حسد را با هدیه از بین ببرید حسد را با سلام کردن از بین ببرید حسد را با خیرخواهی از بین ببرید حسد را با حرف خوب از بین ببرید حسد را با دعای خیر از بین ببرید اینو راهکاره راه چاره است انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء شيطان اگر می خواهد بین ماها دشمنی و کینه و کدورت و بغض ایجاد بکنه فالخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون همون ترک مشروب همون ترک قمار با اون هایی که بین دو طرف میشه و سبب میشه که بغض و کینه و کدورت بین اونها بیاد و اینجا دو تا از اون راه های شیطان داره الله نشونه میده راهای شیطان زیاده هدف شیطان اینه که ما زیاد الله غافل بشیم از الله فاصله بگیریم از نماز فاصله بگیریم فهل بگیر انتم منتهون دست کشی از کینه و قدرت و بغض، بغض چیز خوبی نیست. کینه چیز خوبی نیست. ناراحتی چیز خوبی نیست. ناراحتی از خاطر برو پیشش. ناراحتی از برادرت برو پیشش، برو به زیارتش، برو ملاقاتش. از بینش ببر. با حرف نیکی، با حرف درست با روی خوشت، واتقروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فانف بين قلوبكم. الفات رحمت الهی است. برادری، خوبت ایمانی این نعمت تبدیل به نقمتش نکنیم تبدیل به زلتش نکنیم فا اصبحتم به نعمتی اخوانا این نعمت الهی بر سر ما بود که ما شدیم برادر نعمت را باید سفاس گفت نعمت را باید حفظش کرد نه از بینش برد این برادری و اخووت نعمت الهیه نعمت الهی را باید پاس داشت خصوصا وقتی که از یک خانواده باشیم خواهر برادر از یک مادر باشیم با چنگ و, بگیر. با چنگ و دندان. سيرناشو از دي دانشوون از لبخندبون هوا از هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينه دوبار تكرار كرة وألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم تعليف قلبها نعمة إلهية نعمة سفاس مخاط محافظة برؤم مخاط باتحفزش شکر سفاس الله جل و علا در اینه که اون اخوت را پررنگش بکنی قویش بکنی نه اینکه تبدیل به بغض و کدورت و خسومتش بکنی بفتر همین الله جل و علا هر ای که سبب میشه این الفت و این نعمت از ما گرفته بشه بر ما حرام کرده مثل نمامی که قبلا داشته لا یدخل الجنه القتات نمام خبرچین افساد میکنه بین مردم وارد بهش نمیشه این سخته بر کسی که ایجاد دشمنی و کینه و میکنه لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس خیریت در اینه در اصلاح بین مردم و من ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما که سعی تلاشش در اصلاح میان مردم پاداش بسیار بزرگی را الله خواهد یافت فسوف نؤتيه أجرا عظيما إن قداشة إلهية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما دنبال الصلح وشيد أشتي وشيد فاتقوا الله وأصلحوا بينكم نظرهم شيطان بسط ما جاد أشتي وشه قال المؤلف رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا وجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه 616 امین حدیث از حدیث صحیح ادام فرده من بخاری رحمه الله حدیث ابوهریره رضی الله عنه غفر له و لامه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اینکه گویات شنیدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودن تجد من شر الناس يوم از اون کسانی که پسرین و بدترین مردم در روز قیامت کسانی رو بینی تجد من شر الناس يوم القيامه عند الله نزل الله پسرین و بدترین مردم در روز قیامت چه کسانی ذل اون اونهایی که درو هستن قبلا داشتیم اونهایی که درون الیاتی هؤلاء به وجه و هؤلاء وجه میاد پیش اینها ونمود میکنه که با اینهاس خوبی اینها را میخواد بدی اونها و میره پیش اونها ونمود میکنه خوبی اونها را میخواد بدی اونها را میخواد هدفش دو همزنیه هدفش نمامی و خبرچینیه هدفش غیبت کردنه هدفش اصلاح نیست این صفت از صفات منافقینه و اذا لقوا الذين امنوا قالوا امننا واذا دخلوا الى شياطينهم قالوا اننا معكم ومؤمنين میگن ما با شما با شیاطینشون میگن ما با شما این مزذبین بین ذلك لا اله اولا هؤلاء لا ولا اله هؤلاء هم با مشرکینن هم با مؤمنینن نه با اینها در حقیقتشون نه با اینها میخوان همه را راضی نگه دارن خیلی صفت بدیه انسانی که بخواد وانمود بکنه آدم خوبیه میخواد همه ازش راضی باشن نمیخواد نهی از منکری بکنه، بخواد که ازش نرنجه. میخواد بگه که من آدم خوبیم. خیلی صفت بدیه از صفات نفاقه دنبال رضایت الهی نیست، دنبال رضایت مردمه. هر با انجام دادن حرام باشه. دعوتش میکنن در یک مراسمی که حرامه. در اون مراسم شرکت میکنه. تا بگه که من آدم میان روایم. من مشکلی با کسی ندارم. با این جماعت هست، با این جماعت هست، با این جماعت هست، با همه هست. میخواد بگه من با کسی مشکل ندارم. این یکی از مریزیا هست، بیماریا هست. ان اعظم بعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم هشدار ده ازش يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل يصبح مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويصبح كافرا سوى مسلمونه شب كافره شب مؤمنه صبحش كافره يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل وعندك شيء دينش ومفروشه بخاطر رضايت هيك تاجر فتوى ميدي موسيقي حراله به خاطر که تجار راضی بشن به خاطری که تجار جیب و شل کنن دینیشون میفروشه به خاطر رضایت مردم به خاطر رضایت چهار تا کاسه اینو بعد ما ارزش بر هزار باشیم این درویه حق را میدونی نمیگی به خاطری که مردم ازت راضی بشن تو دل چیز دیگه هست علم چیز دیگه میگه ولی زبان چیز دیگه داره میگه میدونی این فعلت حرامه میدونی اون کار بدعته معسیته ولی ای که با این وجود انجامش میدی میدونی हिंदुर्یه چرا بدعت انجام میدی و خودت میدونی که بدعته چرا میدونی بدعته و انجامش میدی طرف رفته سر قبل نشسته تلقی میخونه میدونم حدیث تلقیم دروغه بهش میگه خب چرا تو تلقی میخونی میگه خایه مردم از من برنجن خب تو قلبا اقرار داری که این کارت حرامه چرا حرام را انجام میدی چرا خشم الله را میخری برای خودت تا مردم از اعتراضی باشن این مردم تو را نجات میدن در روز قیامت من الذی و عنده الا باذنه کسی میگه بدون اجازه ای الله تورا شفاعت میکنه در روز قیامت کسی میتونه تورا نجات بده گیری تو از جهنم بیرون بکشه روز قیامت نگیره اگر الله نخواهد الله را خودت ناراضی کردی به خاطر مردم اون روزی که الله جل و علا ازش یاد میکنه با اون سختیش و اذا جت صاخه یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبته و بنی برادرش از دستش فراری فرار میکنه تا کسی حقشو نگیره از پدر و مادرش حقوقشو پایمال کرده فراریه از زن و بچهش فراریه نگوف از دوست و رفیق از اونایی که حق به گردنش دارن فراریه باید خودمون آماده بکنیم مهیا بکنیم به اون روز سخت نباید دنبال خوشنودی مردم باشیم رضایت مردم باشیم از تخشه اون الناس مردم میترسید ترس از مردم صفات منافقیه کاری که انجام میدیم به خاطر رضای الله جل و علا انجام بده درو نباش با الله یه طوری با مردم یه طوری دیگه اون طوری که الله میپسنده باش در حدیث داریم که رسول الله صلی علیه و آله فرمایان: من کان له وجهان فی الدنيا و کسی که و داره در دا دنیا کان له یوم القیامه لسانان من نار. دو تا زبان از جهنم خواهد داشت در روز قیامت. عذاب ها متنوع در جهنم. این شخص زبانش آتشین میشه، شخص دیگری زقوم به خوردش داده میشه، شخص دیگر حمیم و آب جوشان، شخص دیگری اون ناخن‌های آهنی به سر صورت خودش میزنه. انواع عذاب و انم عذاب درناک برای اون کسی که زبانش دو وجه داره جلو رو یه طور یه پشت رود یه طور دیگه هست. اون زبان درو آتشین میشه در روز قیامت که اون شخص با اون زبانش عذاب ببینه قال المؤلف رحمه الله حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا سيسادوا إفدهمين حديث حديث سيادة مفراد حديثة به رضي الله عنه وغفر الله له ولأمه أزرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبير إياكم والظن ایاکم تحذيره داره. بر حذر باشید بر حذر باشید از زن و گمان ایاکم ظن فان الظن اکذب الحديث فان الظن اکذب الحديث زن و گمان شک و تردید از بیماری های قلبیه خصوصا وقتی که از خوشبینی تبدیل بشه به بدبینی گمانت به مردم بد باشه، تو دیگه زندگی نخواهی داشت نفست به خودت دروغ میگه همونطور که زبان دروغ میگه نفست به تو دروغ میگه فان ظن اکذب الحديث بلکه نفس انسان دروغش بر ما بیشتر از اون زبان دروغ و اون دروغو حالا یکی از توجیهات یکی از توجیهاتی که بعضی از اهل علم داشتن و یا اینکه بگیم فان ظن اکذب الحديث بیشتر ها دروغن دروغ واقع میشن اون گمان شک و وسواس و تردیدی هست که شیطان در دل ما میندازه کمه از اون شک و گمانها که درست در بیاد بیشترش چیه؟ بیشترش دروغه بیشترش وسوسه ابلیسیه. تو دلت اومده رفتی در خونه خوهرتو زدی خوهرت میگه من میخوام برم بیرون مهمونی کار دارم ها این نخواستن که من برم پیشش نفست به تو داره دروغ میگه خودتو متهم کن نفس خودت را متهم کن قلب خودت را چشم خودت را متهم کن نه خوهرت شیطانه دنبال عداوت دشمنی و کینه و کدورته بین ماها برحضر باشید از این گمان گمان بده گمان بد به مسلمانی چه در ایمانش چه در تقویش چه در اون معامله و تعاملش علینا ظاهر و علی الله سرایر ما معمولیم به ظاهر از قلب کسی با خبر نیست رسول الله صلی و سخت اسامه را رضی الله عنه توبیخ میکنه وقتی که در جنگ سر و مشرک را میزنه مشرک نبود کلمه توحید, توحید را میگه ولی به زن و گمان اسامه رضی الله عنه اون شخص بخاطر خاطر نجات خودش کلمه توحید را گفته صحابه میان شکایت میکنن رضی الله عنهم اجمعین نظر رسول الله صلی الله علیه وسلم آله گفت یا رسول الله انه کان متعوذا خاص خودشو پناه بده قال اشققت قلبه میگه قلبش رو باز کردی میگه فهمیدی در دلش چی گذشته؟ سخت او بیخش میکنه. سخت او بیخش میکنه. باش برخورد میکنه. تو فردی که کلمه توحید رو گفته و کشتی، جواب خدا رو چی میخوای بدی؟ چی چی سبب شد که در این گناه بیفته؟ در این ظلم بیفته؟ گمان بعد. زن ذنش بر این بود که این شخص به خاطر نجات خودش داره این کلمه رو میگه. نگاه بکنید چقدر بده. اون وسوسه شیطانی، اون تردید و شک شیطانی که در دلت میاد بس یکی از گناهان بزرگ زن و گمانه که سبب تفرقه و جدایی و رویگردانی ما از هم دیگه میشه به اون حدیث و گفته قلبمون توجه نکنیم باورش نکنیم نفسمون نگا تو دلمون نظریه چیزی اومد به خودمون میگیم رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن چی فان الظن اکذب الحديث بیشترین دروغها دروغای نفسه دروغی که نفسمون به ما میکنه بیشترین دروغها اون دروغاست راسی تو دل کمه خودمون رو متهم بکنیم قلب خودمون رو متهم بکنیم اون حرف و زمزمه سخن قلبمون با ما اون رو متهم بکنیم ظاهر برادری و خوبتمون رو به هم نزنیم پس هم دیگه روی گردان نشیم به خاطر بساوس شیطانی نزغات شیطانی خاطر همین الله جل و ما رو توصیه میکنه در قرآن که از الفاظ نیک استفاده کنید تا اینکه شیطان اون زن نگوان بد در دل و قل عبادی یقولو لتی احسن نگف حسن گفت احسن بهترین این الفاظ را به کار ببرید با هم دیگه چرا این الشيطان ینزغو بینه هم نزغات میاره شیطان از اون حرف خوبه شاید سوستفاده بکنه پس خوبترین بگو نظر شیطان سوستفاده بکنه و در دل شک و تردید نسبت به برادرت ایجاد بکنه ولا تناجش ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا ولا تدابر وكونوا عباد الله اخوانا حمرو گفتیم جز یکی حسد و گفتیم بغض را گفتیم مسابقه و تنافس و گفتیم و تدابر و گفتیم من تناجش نجش شاديک از تعریفش از همون چیزایی هست که رسول الله صلی الله علیه و فرمودن که نشانهای نشان های قیامت شخص زبان گاو داره با زبانش کس میکنه نجش اینه که تجارت در یک معامله ای شخص میخواد کالاشو رو بفروشه این شخص میاد یک قیمتی میگه گذااف بازارگرمی میکنه نمیخوادم بخرا فقط هدفش بازارگرمیه. اینقدر برات چر میکنه برنامه میکنه فروشنده با اون کسی که نجشکاری میکنه با هم دیگه دستبی یکی شدن کسی که اومده قیمت رو بالا میبره یا اضافه گویی میکنه یا زبان چربی میکنه اینجا و هدفشم بازارگرمی برای اون فروشنده. شخص ماشین خریده از بس که تعریف کرده جلو به نماشگاه بونگا قیمت هم روش گذاره اومده فلانی نگاه کنه اومده اینقدر قیمت گذاشته چهار تا دوست رفیق هم با هم دیگه هستن آخر ماشین میاد که اصلا این سر تا پشت تصادفی و رنگ کرده و ولی خب این شخص دوچار فریب شده فریب خورده اونها معامله گرمی کردن با نجش با بازار گرمیشون این شخص فریب خورده حالا کسی فریب خورد چی میشه نتیجهش عاقبتش منم میدونم که این شخص بونگاهی سرم کلاه گذاشته ماشین تصادفی به امداده فردا توی مسجد دیدمش با چه روی نگاهش میکنم با خوبی دوستی یا بغض کینه سرم کلاه گذاشت دروغ به امداده هم, هم اون هم اون کسی که بازرگانی کرده اینم میاد انتقام میگیره اون انتقام میگیره این این کارو میکنه اونم این کارو میکنه مسلمان ها چی میشن میشن امتی واحد میشن امتی متفرق که بخون هم دیگه تشنه اوغری مثال ها رو در رسول الله صلی الله علیه و میزنه از اون چیزی که اون خوته را خطه دار میکنه هدف چیه حفظ اخوت و برادری و کون عباد الله اخوان بندگان الله و برادر باشید هدف حفظ بندگی و حفظ برادری در بعض از روایت اومده ولا تجسسوا ولا تحسسوا این دوتا تا نداشتیم ولی خب در روایت سعی مسلم و هم اومده ولا تجسسوا ولا تحسسوا تجسس گفته شده که یه نوع زیرکی و کنجکاوی در جنگه که ما نقاط ضعف اون دشمن را پی ببریم که بهشون ضربه بزنیم تجسس برای عیبیابیه که هر کسی هم نمیتونه بهش پی ببره تحسس امور ظاهریه فرق بین تجسس و تحسس حالا بعض از علما گفتن تحسس اینه که با اون ابزار حسی که در اختیار داری نقاط ضعف دشمنت را بشناسی. با دیدن، با استراق سمع، اینا تحسسه که هم از تجسسه ولی خب اینجا آشکاره، اونجا مخفیه هر دوتا کنشکاویه پیگیریه، داری پیگیری میکنی اخبار یک شخصی با دشمن محموده چون میخوای پیروز بشی بر اونها ولی با دوست و رفیق حرامه چشمی، نگاهی که تو خونه مردم بیفته از پشت دری، پنجره، صاحب خونه متوجه بشه با سیخی آهنی بزنه توی اون چشم چشم کور بکنه اون چشم هدره گوشی بیاد حرف مردم را بشنوه استراق سمع بکنه تجسس بکنه تحسس بکنه حرف مردم را گوش بده و اونها راضی نیستن رسول الله صلی الله علیه و سلام می‌فرماید کسی که سخن افرادی را گوش بده که اونها هم دوست ندارن که حرفاشون کسی بشنوه روز قیامت الله جل و علا سرب به گداخته را در گوش و آنها میریزد. قبط خیلی سختیه سرب گداخته توی گوششون میریزن اون کسانی که تجسس میکنن با گوش دادن سخن مردم با سرکشیدن به زندگی مردم حالا چه با دیدن چه با شنیدن چه با سؤال پرس کردن بچه رو دم خونه میبینن پدرت کجاست؟ چرا نیمد؟ چی خرید؟ چی نخرید؟ دخالت میکنن در زندگی مردم سرک میکشن یا با سؤال پرس، با زبانه یا با دیدن. یواشنیدن با, با هر ابزاری که ما در اختیار داریم چه با هک کردن کامپیوترشه موبایلشه اینا همه جاسوسیه که شرمنش کرده چرا چون ایجاد دشمنی و عداوت میکنه ایجاد کینه و کدورت میکنه و خووت و برادری رو از بین میبره من چطور با اون کسی که میدونم جاسوسی میکنه حرف من رو گوش میده من چطور بهش اطمینان بکنم حالا بخواد مامور باشه میخواد هر کسی باشه من یکی کسی که حرفمو گوش میده چطور میتونم اطمینان بکنم چطور بیش میتونم اعتماد بکنم نمیتونم اعتماد بکنم سلب اعتماد میشه حتی در یک کشور در یک حکومت وقتی که این قضیه ترویج پیدا بکنه حرمتاش شکسته بشه سبب نارضایتی میشه سبب بغض کینه و کدورت میشه سبب جدایی میشه دیگه من اونها رو برادر خودم نمیدونم دشمن خودم میبینم اینا دارن گوش فرامیدن به اون مسائل زندگی خاص بین من و همسرمه بین من و داره سرک میکشه اینها اون خوفت و برادری رو از میبره پس بر باشین ولا تجسسوا ولا تحسسوا واخرشم ولا يخطب الرجل على خطبه اخيه حتى ينكح او يترك <تصفيق> <تصفيق> يكي از شما رفت خواستگاری نرید رو دستش خواستگاری بکنید تا اینکه یا اینکه ازدواج میکنه با اون دختره و یا اینکه ترک میکنه ترک کرد بفرمایید برید شما خواستگاری ولی مادامی که جوابش ندادن حق ندارید که رو دستش برید خواستگاری بکنید میخوای رو دستش بزنی و اونم میدونی که قبل از تو رفت تو گناهکاری تو داری اون اخوت برادری که الله هزت خاصه اون اخوت برادری داری از بین میبری و کون عباد الله اخوانا قال المؤلف رحمه الله حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن سهيل عن أبيه عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلٌ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنًا فَيُقَالُ أَنظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا سي ساد و اجدهومين حديث ازا حديث صحيحة حديث ابو هريره رضي الله عنه وغفر الله له ولامه عز رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يفرماين تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس درهای بهش دوشنبه و پنجشنبه باز میشن فيغفر لكل عبد هر بندهي الله گناهانش رو میامرز مگر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا فيغفر لكل عبد بر هر هر بندهي الله رو اون بنده ای که دوچار شرک نشده باشه اول شرطش یعنی اون شخص مرک نباشه، دوچار شرک نشده باشه. شرط دوم برای بخشش گناه روز دوشنبه و پنجشنبه. ال رجلن كانت بین هو و بین اخی شحنا، دومی هم دوتا مهممن اونجا مشکرک بود مشررک اصلا اعمالش قابل قبول نیست. دومی هم دو تا برادران که بینشون کدورت و الله هم مهلت میده میگه انض هذین حتی یااف مهلت میده بینها گناهشون بخشیده نمیشه تا اینکه صلح بکنن اگر یکی از اینها مرد جاشون کجاست جهنم چنانچه در اون حدیث قبلی که خوندیم یاد شد قال المؤلف رحمه الله حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبد الدرداء رضي الله عنه يقول ألا أحدثكم بما هو خير لكم من الصدقة والصيام صلاح ذات البين ألا وإن البغضة هي الحالقة سيسد نزهمين حديث أز أحاديث صحيح هذا بمفرد إمام بخاري رحمه الله وغفر له از ابو الدرداء رضی الله عنه که میگوید و این روایت هم حکم مرفوع رو داره الا احدثتكم بما هو خير لكم من الصدقه وصيام قبلا داشتیم بهتون خبر ندم از اون چیزی که فضلش از صدقه و روزه صلاح و ذات البین مرفوعش داشتیم اینجا از سخنان ابو الدرداء است که حکم مرفوع رو داره اصلاح کردن ذات البین یعنی میان همدیگر ارتباطات رو حفظ بکنیم، پایدارش بکنیم، اصلاحش بکنیم. الا و ان البغضه هي الحالقه. تباغض، کینه، کدورت هست پاداش و عجرت را از تو می‌زدایه، پاکش میکنه، از بین میبره بر حذر باش. دینت رو از تو میگیره بغض و کینه و کدورت دینت رو از تو میگیره سر میشه که روز قیامت بیایی و با خودت اجر و پاداشی نداشته باشی، ترازویت خالی باشه. قال المؤلف رحمه الله باب من أشار على أخيه وإن لم يستشره حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا بكر عن ابن عجلان أن وهب بن كيسان أخبره وكان وهب أدرك عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى راعيا وغنما في مكان قبيح ورأى مكانا أمثل منه فقال له ويحك يا راعي حولها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل راع مسؤول عن رعيته سدو شسو نهومين باب زباب صحيح ادام مفرد من بخاري رحمه الله وغفر له اسكنه فسيح جناته باب من أشار على أخيه وإلنم يستشره كسي نسيحت نسيحات بكونه برادرش مشورتي بهش بده ما ما زش مشورت نخصه نسيحات نخصه خير خواهي از باب خیرخواهی برادر ماشینی تو اینجا ننداست دیدم که یکی اومده قد کشیده از خرقه بچه بچت دیدن که با فلان میگرده سیگار میگشه داره خونه شو بزن خیرخواه برادرت باش برادرت را از نصیحتت دریغ نکن دین ما دین نصیحت دین النصیح دین النصیح الدین النصیح دین ما پایدارش روی نصیحته 320مین حدیثمون از رواه ابن کیسان از عبدالله بن عمر رضی الله عنه که میگه عبدالله بن با که کدر یک جای بدی نگه داشته بود جای غیر مناسبی و را مکنن امثلا من، یک جایی بهتر از اونم بود فقال له وی حک یا راعی وای برتو ای چوپان حویل ها چوشو نهوز کن حیوان ازت گلایه میکنه روز قیامت مثل شطوری که داشتیم که می کرد از صاحبش حیوانم حق داره بگردنه تو مسئولی در مقابلش عبدالله بن عمر رجل میگه. میگه شنیدم که رسول الله صلی الله و کل راع مسئول عن راعیته کل راع هر کسی مسئولیتی بردوشش گذاشته بشه مسئولیتی را بپذیره چه پدره مسئولیتی یه خانواده ای میپذیره مسئول بر فرزندانش و همسرش چه مدیر در مدرسه چه معلم در کلاس چه چوپانی با اون حیوانایی که زیر دسته تو مسئولی در مقابل اونها که حق اون چیزی که الله به تو اهلیت مدیریت اونها را بر دوشت گذاشته حق اونها را اداو کنی اون چیزی که به مصلحت اونهاست این از خیرقاهی به حیوان نیست که در جای بدی اونها رو نگهداری بکنی حتی نسبت به اون حیوانم باید خیرقاه باشی در جای خوبی اونها رو نگهداری مواظبشون باشی اهمیت به با اونها بدی وقتی که انسان این چنین دینی داره و این توصیه هایی داره در احسان و خوبی کردن این دین در دلش عزیز میشه این دین واقعاً دین زیباییه و این هست که تعجب را از به میبره که چطور اسلام از این ورد تا چین رسید و از اون ورد تا اسپانیا. نمیرسه اسلام نمیتونست برسه با این همه خوبی با این همه خیرات با این همه احسان با این همه نیکی همومونین عائشه چطور بود؟ رضی الله عنه با بردگانش بخاطر یک قسم چل تا برده آزاد میکنه عبدالله بن عمر چطور بود؟ با یک ناسزهی بردگانش رو آزاد میکنه. مال برایشون ارزش نداشت، مهم برایشون روسفیدی در آخرت بود، مهم برایشون ملاقات الله با روسفیدی بود، مهم برایشون آخرت بود، دنیا برایشون عزیز نبود، مهم برایشون حفظ و و برادریه، التماس میکردن برای اینکه بینشون صلح و آشتی برقرار بشه، عبدالله بن زبر، تا جایی که میتونه دار و ندارشو در اختیار اون مونیعشه قرار میده تا باش صلح بکنه اون از اون 40 تا برده ده تا ده تا برده هم خودش میفرستاد بدن از اون مونیعشه تا اینکه مونیعشه کفاره بده و راضی بشه ازش تلاش میکرد برای خوشنودی و رضای الهی جل و علا اینها شد که مردم سراسیمه وارد اسلام شدن ادج ا رسول الله والفات و رايت الناس يدخلون فی دین الله افواج فوج فوج دست دسته و گروه گروه وارد اسلام شدن خوبی از اسلام دیدن راستی از اسلام دیدن درستگویی از اسلام دیدن بر خلاف الان مغازدار از مغازدار دیگر کینه و کدورت داره بغض و کینه داره همسایه از همسایه بازاری از بازاری این معاملگر از اون معاملگر، این کارمند نسبت به اون کارمند تو یک شرکتند، تو یک اداره هم همه زیر آب همدیگر رو می‌زنن این میخواد مدیر بشه اون میخواد مدیر بشه این میخواد حق و جانب بشه این میخواد رتبه پیدا بکنه نمیخواد اون یکی هی. ازش بهتر باشه حقوقی بیشتری بگیره و الی آخر این رشوه میگیره این زیرمیزی میگیره حتی پزشکش برای خودم پیش اومده پزشک برای اینکه عمل جراحی رو انجام بده در بیمارستان دولتی رشوه ازت میخواد پزشک باج میده برای خودش دلال داره اون دلال برای خودش رشوه میگیره زیرمیزی به اون پرستار میده به اون منشی دکتر میده دکترش راشی و مرتشی اون پرسار اون منشی و اون دلال ها الله المستع الله المشتکم هر جا گلی گلیمی تو از جهنم در بکشی یک جایی تو را آلوده میکنن حتی تو اون حجت میخوای بری فیش حج میخوای بخری میخوای حج بری اون پولی که ازت میخوان میگیرن ازش سود میکشن سود میذارن هر جا میری میخوان تو را با اون ربا آلوده بکنن والله این درده. الله این رنجه ولی خب مصلحین در امت بیدارن و هوشیار تلاششون بر اصلاح ما را جز المصلحین قرار بده و از ما راضی و خشنود بگرده و در قلب ماها ترس از خودش قرار بده تا از گناه و معصیت دور بشیم و به طاعت و عبادتش نزدیک بشیم سبحانك الله وبحمدك سبحان الله و صلی الله علی محمد و آل محمد